در دلهایشان مرضی است و خدا بر مرضشان افزود و به سزای آنچه به دروغ میگفتند عذابی دردناک در پیش خواهند داد